یکی انگاری نفسانی خود با درد دردمندی بدن روندی را که همکنون توضیح دادم هم نیرومند است و هم ساده این روند را می توان به یک کودک نیز یاد داد امیدوارم روزی فرا برسد که این روند را در مدارس ابتدایی به کودکان هم بیاموزند هنگامی که اصل اساسی حضور داشتن را یعنی تماشاگر قوقای درون بودن را میفهمی و آن را از طریق تجربه میفهمی ابزار دگرگونی بنیادی خیش را پیدا کردی البته وقتی میخواهی خود را از درد و رنج خود جدا کنی مقاومتی را در درون خیش احساس خواهی کرد بویژه اگر بیشتر عمر خود را با یکی انگاری خود با دردمندی عاطفی بدن خود زیسته باشی در این صورت تصویری از خود ساخته ای که با دردمندی عاطفی بدن تو کاملا همانند است بدین معنا که از دردمندی بدن خیش یک خود ناشاد ساخته ای و باور کرده ای که این داستان ساخته و پرداخته زه واقعا خود تو هستی بنابراین ترس ناخداگاه از دست دادن هویت مقاومتی شدید را نشان می و مانع آن می که تو بین خودت و دردمندی بدنت جدایی قائل شوی. به تعبیر دیگر تو ترجیح میدهی خیشتن ناشاد اما آشنای خود باشی دردمندی بدن خیش باشی تا اینکه بخواهی خطر کنی و برای دیدار با خیشتن خیش به اقلیم ناشناخته گام بگذاری اگر این نکته شامل حال تو میشود مقاومت درون خیش را مشاهده کن وابستگی خود را به درد و رنج خیش ببین کاملا حشیار باش ببین چگونه از ناشادی خود خرسند می شوی. ببین چقدر دوست داری درباره قمهای خود سخن بگویی یا به آنها فکر کنی اگر آگاه شوی مقاومت درونی تو نیز متوقف می شود. آنگاه می توانی توجه خود را به دردمندی بدن خیش معطوف کنی به عنوان شاهد حضور داشته باشی و دگرگونی بنیادی درون خیش را آغاز کنی. فقط تو می توانی از عهده این کار برایی. هیچ کس نمی تواند این کار را برای تو انجام دهد. اما اگر بخت با تو یار باشد و استادی آگاه را پیدا کنی اگر بتوانی با او و در حلقه آگاهان حضور پیدا کنی به روند تحول خلاق درون خیش سرعت میبخشی بدین سان نور درون خود تو تابانتر و درخشانتر می شود اگر هیزمی را که تازه شعلور شده است کنار هیزمی که کاملا گر گرفته است قرار دهی هیزم شعلور نخست بهتر خواهد سوخت و شعلورتر خواهد شد در هر حال آتش همان آتش است شعلورتر ساختن و روشنتر کردن یکی از وظایف استادان معنوی است استادانی که حضوری آگاهانه دارند و به فراسوی ذهن سفر کردند خاستگاه ترس شما یادآور شدید که ترس پاره اساسی درد عاطفی ماست. ترس چگونه ایجاد می‌شود و دلیل وجود آن در زندگی آدمیان چیست؟ آیا بعضی از ترس‌ها برای دفاع از خود در برابر خطرها ضروری نیست؟ اگر من از سوختن نترسم، ممکن است دست خود را روی آتش بگذارم و بسوزم. دلیل آن که تو دست خود را روی آتش نمی‌گیری؟ ترس نیست بلکه این آگاهی است که تو خواهی سوخت برای اجتناب از خطرات غیرضروری لازم نیست به ترسی کمی آگاهی و احساس کفایت می کند. برای این گونه موضوعات عملی به کار بستن درسهای گرفته شده در گذشته بسیار مفید است حالا اگر کسی تو را با آتش یا با چاقو تهدید کند ممکن است چیزی شبیه ترس را در درون خود احساس کنی. این احساس کنشی غریزی است که تو را از خطر دور می کند. اما حالت ذهنی یا روانی ترس نیست. حالت ذهنی یا روانی ترس با احساس بلاواسته خطر فرق دارد. حالت روانی ترس در صورتهای گوناگون بروز و ظهور می کند. مثل بیقراری، نگرانی، استراب، عصبیت، تنش، دلهره، نفرت و غیره ترس روانی چیزی است که همیشه باید اتفاق بیفتد نه چیزی که در لحظیه حال اتفاق میفتد تو در لحظیه اکنون و اینجایی در حالی که ذهن تو در آینده سیر میکند این حالت برای نفوذ استراب رخنه ایجاد می کند. اگر خود را با ذهن خیش همزاد بپنداری و ارتباط خود را با نیرو و سادگی لحظه حال از دست بدهی این رخنه استراب پاره جدایی ناپذیر از وجود تو خواهد شد تو همیشه حریف لحظه حال میشوی، اما نمی توانی از پس چیزی برای که فرافکنی ذهن توست تو از پس آینده بر نمیایی. علاوه تا موقعی که خود را با ذهن خیش یکی می انگاری نفس است که زندگی تو را اداره می کند. زیرا به دلیل ماهیت شبهوار نفس و نیز برخلاف سازوکار ساز وکار پیچیده دفاعی آن نفس خود را بسیار شکننده و ناامن احساس می کند. نفس مدام خود را در معرض تهدید می‌بیند با وجود این نفس خود را در ظاهر بسیار مطمئن نشان می‌دهد گفتم که یک احساس واکنش بدن تو نسبت به ذهن توست بدن تو چه پیامی را مدام از نفس تو از خود دروغین و ساختۀ ذهن تو دریافت می‌کند خطر من در معرض تهدید و حمله هستم و این پیام مدام چه احساسی را در تو ایجاد خواهد کرد؟ البته ترس هنگامی که حساب خود را از ذهن خود جدا می کنی اینکه که برحق باشی یا نه هیچ ربطی به احساس کردن خیشتن حقیقیت ندارد بنابراین دیگر نیازی نمی بینی که حقانیت خود را اثبات کنی ابراز این نیاز شکلی از خشونت است حالا دیگر می توانی شفاف و استوار احساس خود را بیان کنی و درباره اندیشه خود سخن بگویی. اما نیازی نمیبینی که با زور خود را به مخاطب خیش بقبولانی. حالا دیگر احساس خیشتن حقیقی تو از جایی در اعماق وجود تو برمیخیزد نه ذهن تو. شاهد هر نوع حالت نامطمئنی و دفاعی درون خیش باش. در برابر چه چیزی حالت تدافعی گرفتی؟ میکوشی از یک هویت وهمی به یک تصویر ذهنی از خود دفاع کنی. وقتی نور آگاهی خیش را بر این الگوی نا آگاهانی ذهنی می‌افکنی، و آن را می‌بینی این الگو محو می‌شود. بدین سان همه جدل‌ها و بازی‌های قدرت تو به پایان می‌رسد. جدل‌ها و بازی قدرتی که فرسایندی یک رابطه سالمند. میل به تفوق و سلطه بر دیگران صورت تغییر شکل داده ی و ناتوانی است. قدرت حقیقی در درون توست و همکنون در دسترس توست. توست. بنابراین همواره می کسی که خود را با ذهن خیش یکی می انگارد. از منبع حقیقی قدرت درون خیش جدا می افتد و با خیشتن ژرفتر خود که ریشه در هستی دارد بیگانه می شود تعداد آدم هایی که توانستند به فراسوی ذهن خیش سفر کنند بسیار اندک است بنابراین بیشتر آدم ها در حالتی از ترس زندگی می کنند این ترس بین این دو قطب در نوسان است استراب و دلهره در یک سو و حالتی مبهم از ناراحتی و احساس تهدید در سوی دیگر بسیاری از افراد فقط زمانی نسبت به این قطبها آگاه می شوند که حالت روانیشان بحرانی می شود درد عاطفی انصر ذاتی ذهن نفسانی است یکی از ابعاد این درد عاطفی احساس عمیق کمبود یا نقص است، احساس کامل نبودن. این احساس در بعضی ها آگاهانه است و در بعضی ها ناآگاهانه. این احساس زمانی که آگاهانه است، خود را به صورت احساس شایسته نبودن و یا به اندازه کافی خوب نبودن جلوه میدهد. اگر ناآگاهانه باشد، خود را به صورت تمنای شدید خواهش و نیاز جلوگر میسازد در هر حال حفره در درون آدم ها هست که آنها را به سوی اشیا و جاذبه های نفسانی میکشاند تا این حفره را به شکلی پر کنند بنابراین آنها حریصانه بر داشته های خود می به دنبال پول می روند، خواهان موفقیت و قدرت می شوند دوست دارند شناخته و مشهور شوند تا احساس بهتری نسبت به خود پیدا کنند و خود را کاملتر ببینند. اما وقتی آنها به تمامی این چیزها میرسند، خیلی زود در میابند که حفره درونشان هنوز خالی است و این حفره پرنا است. آنگاه گرفتاری آغاز می شود. زیر آنها دیگر نمی توانند خود را گول بزنند. البته سعی می کنند خود را گول بزنند اما گرفتاری خود را چند برابر می کنند تا وقتی که ذهن نفسانی تو عهدهدار زندگی توست نمیتوانی احساس راحتی کنی نمیتوانی آرامش را احساس کنی البته در همان لحظه ها یا روزهای نخست که به تمنا و آرزوی خود رسیده ای کمی احساس خوشحالی میکنی اما این خوشحالی دوامی ندارد از آنجا که نفس یک حس اکتسابی از خود است، بنابراین محتاج است تا خود را با چیزهای بیرونی یکی بسازد. نفس محتاج آن است که مدام از خود دفاع کند و خود را تغذیه کند تا بماند. شایعترین شکل همزاد پنداری نفس جایی است که نفس خود را با داشتهها، مقام، شهرت، مدرک، دانش و اطلاعات، خوشگلی و خوشتیپی، رابطه ها، اعتبار و شهرت خانواده، باورها و نجات یکی میپندارد. هیچ کدام از اینها تو نیستی. آیا از دانستن این چیزها وحشت کرده ای؟ آیا دانستن این چیزها به تو آرامش داده است؟ بالاخره چه بخواهی؟ چه نخواهی؟ باید همه این ارزش های جعلی را بگذاری و از دنیا بروی. هویت اصلی تو در هیچیک از این ارزش های جعلی پیدا نمی شود. بالاخره این حقیقت را خواهی فهمید زمانی که لحظه مرگ خویش را به طور جدی احساس می کنی. مرگ جدایی تو از همه آن چیزهایی است که تو نیستند و تو خود را با آنها، یکی می انگاشتی راز زندگی این است بمیر پیش از آنکه که بمیری انگاه در میابی که مرگی وجود ندارد. سفر به جرفای لحظه ها هرگز خود را در ذهن نمی آمی. احساس میکنم پیش از رسیدن به آگاهی کامل و یا روشنی معنوی باید خیلی چیزها درباره شیوه های عملکرد ذهنم بدانم. نه، نیاز به دانستن این همه چیز نیست. مشکل ذهن را نمیتوان با ذهن حل کرد. وقتی نقش مختل ذهن را میفهمی، دیگر چیزی باقی نمیماند که بخواهی آن را بدانی یا بفهمی. مطالعه های ذهن شاید از تو یک روانشناس بسازد اما این کار تو را به آن سوی ذهن نمیبرد. همانطور که مطالعه دیوانگی لزوماً تو را عاقل کند تا به اینجا تو سازوکار اصلی مرتبه ناآگاهی را دانستی یکی انگاری خود با ذهن چیزی که خودی دروغین می‌آفریند اما نفس نفس جانشین خیشتن حقیقی تو می شود خیشتنی که ریشه در هستی دارد آنگاه درختی می شوی که ارتباطش را با ریشههایش از دست داده است های نفس پایان ناپذیرند نفس بسیار شکننده است و مدام خود را در خطر میبیند. بنابر این همیشه میترسد و همیشه محتاج است اگر اختلال اساسی روح خیش را بشناسی، نیازی به دانستن تمامی طبعات این اختلال نداری. این موضوع را به یک مسئله تبدیل نکن. البته نفس دوست دارد تو این موضوع را به مسئله ای تبدیل کنی. نفس همباره چیزی را می جوید تا بتواند خود را به آن بچسباند و از آن تقضیه کند. به سان، نفس خود دروغین را فربه می کند. نفس همیشه خود را به مسئله های تو می چسباند، به همین دلیل بخش عمدهی احساس بیشتر آدمها از خود مستقیما با مسائل و مشکلاتشان ارتباط دارد. وقتی این آدمها میخواهند از مسائل و مشکلاتشان رها شوند، احساس میکنند که از خودشان جدا میشوند. آنها برای درد و رنجهای خود سرمایه‌گذاری گذاری ناآگاهانه نفسانی بسیاری کردند. بنابراین به محض فهمیدن ریشه ناآگاهی خود که همان یکی انگاری خود با ذهن است از ناآگاهی بیرون می‌آیی. البته به یاد داشته باش که ذهن شامل عواطف و احساسات نیز می شود. با بیرون آمدن از حوضه ناآگاهی حضور پیدا می کنی وقتی حضور پیدا کردی می توانی ذهن را به حال خود بگذاری بدون آنکه درگیر آن شوی ذهن فی نفس خطاکار نیست وسیله است شگفت و لازم خطا آنجاست که تو آن را خود تلقی می کنی اینجاست که ذهن به نفس تبدیل می شود نفسانی می شود بانگاه عرباب وجود تو می شود